ومنها أن يكون عمل أفتم شرط قبوليات عمال سوالي براضيه أن يكون عمله مبنيا على التذلل لرب العالمين وأن يكون على ببنين أفتم قبليات شرط قبوليات عمال سواليه <تصفيق> انسان در عمالك أنجام محتام دره أعمال خل مكمل بأل الله عجز بسرسا بس عمل و تکبری انجام قبول نمیشه انسان عبادت رو به تکبری در نماز متکبر استاد میشه پاشای جسر بجلکش پایی نفتاده در پشت پایش پایین شده در نماز و با با بسیار به اعتنائی استاد میشه یا یک عمل صالح اینه که دیگه انجام میده به تکبر و با غرور الله عمله که انسان خور به تکبر انجام می و خود را پیش خدا زلیل نمی کنند آجز نمی کنند چرا معنای عبادت همی است که نهایت آجزی نهایت تز و نهایت محبت را چی می عبادت می گن. دیگه شرط افتم در قبولیت عمل صالح همی است که انسان در حضور رب العالمین در, در انجام دادن عمل صالح خود خیلی آجز کنه قلبن خود به الله آجز کنه و عشقم الله اکبر که انسان با امره الله محبت داشته باشه باز الله خدا خود امانش قبول میکنه شرط قبولیت عمل صالح ایست که انسان با امره الله چی داشته باشه محبت فإن فإن كل عمل لا يتذلل مرء فيه لله عز وجل ولا يحبه فيه فليس ذلك عبادة لأن معنى العبادة الحب والذل أو نهاية الحب مع الذل ذل كما قال الله تبارك وتعالى Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu menjadi orang-orang yang beramal saleh. Dan sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu menjadi orang-orang yang beramal saleh. Dan sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu menjadi orang-orang yang beramal از ترس کلان و ملیک قوم نماز میخوند این عملی که انجام داده ولو عمل این که قبول خاطر نمیشه که در عمل انسان بشه خدا آجز استاد نمیشه یه از ترس مبلم میخوند این از محبت شوق نمیخوند از دوستی که با الله داره نمیخوند از خاطر زور میخوند پس این عمل پیش قبول نیست چرا؟ با محبت محبت سرچشمی از عمل نیست kami berjamaah memikirkan musuh-musuh kita dalam nama Allah. Azza wa Jalla. Kami berteraf di masjid ramadhan. Ini adalah tindakan khas beradalah. Kami membenarkan Allah di setiap masa. Kami berdoa kepada Allah. Bukan berarti Allah akan berbuat apa-apa. Kami berdoa kepada Allah. Cinta Allah memberi jaza kepada setiap orang pada masa mereka beribadat. Cinta Allah memberi jaza kepada mereka pada masa mereka beribadat. Cinta Allah memberi ما بعد زكاه تا به محبت، الا مره نمي من گفت معزکات شامل خاريد وقت پول به من عندك ذات انا انساني که پول داره که به الله دوستی داره و حداقل به الله عاجزی میکنم اون مو عاجزی که در قلب به الله دارم و محبتی که در قلب به الله دارم اون مو وادار به این میسازه که وایاد به خانه خدایا رو بخوره و, و لبیک الله اللهم لبیک این میبلزه اداي حاجه به شوق انجام میده الميباشة, و وقت کی بتطلب عجلون میباشه چنان خوشحال میباشه که الله چه قدر لطف کردی سلام کنم مع حال به طرف خانه تو امروز می در دنیا به طرف بهیت تو روان هستم مش روز مشرب به طرف دیدار تو در میدان مشرب روان شو این عمل بر عاجزی و از ترس الله انجام میده یا به محبت الله انجام میده این عمل وقت قبول میشه وقتی که این عمل انسانی تو عادت نباشه آن هم یک انسان دوست دارم اشک براش میارم از بازار بازدال غضب. پسی ماستاب میشه خوش میشیم میگم دوستش دارم چه دوستش دو. اگر یک انسان دوست نمیشه شوشه من ده چاکت باز مینمونم از خاطر مردم یک داره برای سرش ماستاب دارن داده خود جیگر میشوند و نه یه داره پلیس داده ماستابش. او اخلاص جدید. اینا نه. یک انسان که یک انسان دوست داش خوش داره که برای دار بازد با به دو هزار یازده سرش از مصرف شدن پولش در از انسان لذت می بارد. اند انسان اگر با الله با مرا الله محبت می داشته باشه، مصرف شدن وقتش در عبادت خدا لذت بخش می باشه. مصرف شدن پولش در راه الله لذت بخش می باشه. مصرف شدن خوابش در جای عبادت، در جای عبادت، در جای خواب عبادت کردن و ما خواب را از بین بردند. اینی لذفت بخیش چون الله رو دوست داره بدوستی به حضور الله استاد میشه هر قدر تکلیف در حضور الله ببینه لذفت میبره از تکلیف الله هنه اعبادت دوست داره که انسان از سمیم قبل حضور الله استاد شوه بخاطر مردم این عادت منافقین است یا ایده قامو ایده سلاح قامو توسال آور و نایز قلون الله ایلا قلیلا در حضور الله استاد میشه سوست و تنبل استاد میشه از دل استاد نمیشه کریه قلب استاد میشه اما نماز و عبادت برایش مثل یک بوجد میباشه ایاد نمیکنن الله را مگر بسر کام اما محیبین خدا همیشه حد نحزیشن در ذکر الله تاید میشه نگونه ایجا الله جل نجا که بعض از مردم است. که بغیر از الله دیگه دوستات روا ای Elena دوست و اونا را جنان دوست می رشته باشند مثلی که مؤمنین الله را دوست می رشته باشند و کسی که الله را دوست کسی که به الله ایمان داره الله را بهشتر دوست می رشته باشند یعنی کسی که الله را برای ایمان داره ایسا ہمان که این که الله را دوست می temperature باشند آره بین باش مکیر خیلی دوست دار dist دوستی خوالایی ما به از همه از مادر از پدر از بی از خواهر از دنیا از زندگی از اولاد از زن از فرزند از همه کده علور بیشتر دوست داشته باشیم وقتی که بیشتر دوست داشته باشیم اول حق خدا رو تا می کنیم بعد بعد حق مادر حق پدر حق زن حق فرزند حق اجتماع و سنن ما از همه کده اول حق خدا رو زیر پای می کنیم بعد میگیم ما خدا رو دوست داریم دروغ میگین دوست, دوست, دوست, دوست... امروز اگر مسلمان ها واقعا الله رو دوست داشته باشند، از عام کردن کل دنیا رو کفر گردی یا خبه قسم آرام میشینه قرآن در میگیده قرآن توحین میشه مسلمان میگه ما الله رو دوست دارم اگر بچه دی کس به اکچپات بزنه محبت بچه دی هر قدر بشیمه و به بیتوان و بیتاقت باشی مجبور بایی میسیده که وقت بچه دی در آنت ببینی یک دست پنج اگر کسی مادرش امروز درم اجتماع در, در بین مردم پاتر دار بدن او انسان دیگه صبر کد میتانا یا خوده ده نو آتش میندازم روی مادر خود در می ده یا اشک مادر نجات میده اما امروز قرآن در اجتماع اجتماعی در بین آتش اندخته میشه و ما ادعا داریم که بالای محبت داریم الله رو دو دوست داریم دروغ میگی چرا؟ چرا قرآن در بین آتش اندخته شده و سوزیده میشه اما مسلمان اشک هم نمیریزه اگر مادرش دهب مو به آتش بفته اگر پدرش دهب مو به آتش بفته انسان طاقت میکنه غم میکنه کنه، نانم لذت منش، عید منش نمی ده، عروسی منش نمی ده، زندگی منش نمی چرا دوست داشت؟ کتاب الله ده مو به آتش انداخته میشه ما اصلا انسان غم نمیکنیم اگر میکنیم چرا هیچ به جهاز اخدام نمیکنیم چرا صلا در دست نمی چرا از انتقام نمی چرا از انتقام قرآن از کفار نمی گیریم؟ اصلا خود اگر کسی الله رو واقعا دوست دارند بس قرآن خدا رو برداشت نداره در محبتش بشه قرآن خدا رو در محبتش باشند خود رو در محبتش بیندازند این محبت خدا میبین پس به خاطر شرط قبولیت عمل صالح عمی است که انسان با امروی الله محبت داشته باشند محبوبانه عمل انجام بدانند سمیمانه به الله استاد و سمیمانه الله رو عبادت بکنند در عبادت سمیمیت شرط است کسی که الله از سمیم قلب بر نمیکنه یا عبادت نمیکنه و از محبت بر از تش عبادت نمیکنه الله و قسم عبادت رو از او چی نمیکنه؟ قبول نمیکنه لده دکه جا الله جمعی که خاشعین و الخاشعان کامیاب اونو مرز مایستن که از الله میترسن چی زن چی مرد؟ خاشعین و خاشعان و دکه الله باقی قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون الله اونو نمازگذار ازش راضي میشه و کامیابی در نصیبش میشه میده که در نماز خود به الله استاد میشه از الله میترسه با ترس از ترس خدا دوست میشه مشாலح ترس مردم نمی دسته میشه از ترس خدا این دو چیز انسان وادار به این بسازه که الله رو پرستش کنه یکی ترس یکی محبت که انسان وقت از الله بترسه سا اعمالش رو داشته بشه دو چیز اگر انسان باعث ازش شد که الله رو پرستش بکنه با دو عمل به وجود پیدا می‌کنه اگر دو جذبه در بدن انسان پیدا شد باز ریاض انسان کار نمیکنه. یکی محبت الله که انت. الله دوست داشته باشه انسان انسان به الله رو دوست داشت از شوقش به مخاطر الله می میباشه، میکنه در قصه مردم نمی باشه. وای که کسی که از الله ترسید این دو چیز اگر به این دو جذبه کس الله رو پرستش کرد ریاضش کار نمیکنه. میبنه آلیکن ما مردم ریاض تر مکار بکنن ما محبوبانه الله رو پرستش نم وقتی که محبتت با امروی الله کم بود تو در عبادتی که خوشی خدا رو میخوایی تو در وجه مردم خوشی چی الله اکبر الله اکبر اینه تو عمل باعث اسمش تو جذبه اگر انسان وجود داشته باشه ایکی خوف یاکی محبت که معنی عبادت تمامی است انسان به نهایت خوف نهایت دوست نهایت آجزی آجزی به چی میخواید؟ عبادت میده اگر این دو ماده در انسان پیدا ش خو و محabbat به امر الله از الله متصدی امان الله دوشوره باز هر من گنجا بده و اصلا ریا پیدا نمیشه ریا از بی‌حسی از از خداناتصیب پیدا میشه ریا از نبودن محبت به امر الله در اعمال انسان وجود پیدا میکنه باز ببینین که ابن کسی رحمه الله علیه میگه در فاتحه وهو في شروع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف فكل آية وحديث جاء في المحبة والخشوع والتضرر والخضوع والذلة فهو الدال على اشتلاط ذلك في العبادة ولذلك نحى الشارع عن النبس الحريري والذهبي والمنثر خا من الشروء قرآن بفاتحه وكمان محبة الفاتح وجو راز و نیاز خوف و تست در سوره فاتحه وجود داره. و دیگه در تمام آیات و احادیثی که شما عاجزی و محبت را که در باره الله ذکر میشه که انسان باید از الله بتسته و الله رو دوست داشته و شبه الله عاجز باشه از اون معنون میشه که شرط قبولیت عمل ساده میسه چیز است دوستی، ترسیدن از الله و عاجزی کردن به حضور الله این شرط قبولیت عمل ساده کسی که اینمی سی چیز در وجود نداشت ترس الالله، محبت با الله، و آجازی با الله، اینمی سی چیز در عمل انسان وجود نشت ولی انسان صد بات قسم بکره و اعمالش ریاض به این خاطر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میگو که شما کوشش بکنید چیزهایی که در انسان عجب و تکبر را وجود میره نپوشید تلا انسان که کوشید فخر را انسان پیدا میکنه فخر که پیدا کرد غرور تکبر الله و تکبر بند میره ایجاد از وجودک باهم بودن انسان غرور نصیب میکنه وقتی که غرور بر انسان پیدا مت عاجزی انسان میده انسانی که عاجزی ازش الله عمارش قبول میکنه پس به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و میگه لباس آیف فخرامیز و مثلا زرف طلایی ل چیزی ل... انگشتار طلایی بر مداک آرام کرده به این خاطر آرام کرده که براینا عاجز و تکبر نبه که اوجو تکبر در انسان پیداشد محبت و خوف الله از انسان میینه وقتی که محبت و خوف از الله از انسان داد انسان شیطان جور میشه پس به این خاطر شدت قبولیت عمل صالح همین است که انسان هر عملی که انجام می‌کنه با محبت الله انجام میده ما داریم شرط شرط قبولیت عمل صالح همین است که انسان عملی که انجام میده از ترس او خراب انجام میده ما روز مشهد پیش استاد میشه ماده ی عمل از خدا پول و دارایی نمیخواد من در عمل خود از خدا زمین و جایداد و زندگی نمیخواهیم من در عمل خود از خدا آخرت میخواهیم نجات از سختی های آخرت میخواهیم نجات از از آلت شرماول آخرت میخواهیم پس به این نیت و به این جذبه اگر کس عمل صالح انجام میتن چرا روز معشل الله پک یوم عبوسم قمتلی را یوم عظیم یوم یجعل ملدان شیبا یوم یفر المرء من اخیه و امیه یک روز سختی که پدر از بچه از زن از شوحر دختر از پدر مادر برادر دوست عمدی که دیگه مگریزن روزش که انسان وقتی که الله پا قمانده میکنه که در این روز مردم بلند بکنه اگر یک طفل دروزه هم در قبر گذاشته شده در روز, روز. از ترس روز مشهر دیستفید حشر میشه دیستفید حشر میشه روز روز عظیم الله برش گفته یا متقابن گفته بس به این خاطر هر عملی که انسان انجام میده شرطش این است که انسان به خاطر از بنفتن سختی های اخرت سرزیب روز معاشر شده هر عمل که انسان انجام میده شرط قبولی چه می که انسان در عمل خود خوشی آخرت رو می خواد راحت اخرت رو خواد بی جنب و تعامل شرط قبولی عمل صالح برادران امی است که انسان در عمل خود أن يتأثر بكتاب الله عز وجل فمن عمل عملا بلا خوف لم يقبل بل ليس ذلك عبادة كما تقدم في قول ابن كثير رحمه الله والمراد بالتأثر بكتاب الله عز وجل أن يعمل أنه أن يعلم أنه أمر الله أمر الله تعالى وأن في اتباعه سعادة وفي مخالفته حلكة بحيث لا يتأثر عن غيره سبحانه وتعالى كَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَانِحًا وَلَكِنَّهُ مُتْأَثْرِ مِنْ ذَرِكَ عَنْ جَذْبَ خَدْ insan, هر عمل که انجام بده باید از قرآن تأثیل گرفته باشه متأثير قرآن شده باشه متأثير کتاب الله بمی خاطر که انسان در عبادت خود در هر عمل باتنبه این عمل چلو نیکنه؟ این عمل دفلانه قوم رواجه I amal defaultan mentakar awajus. Nee, insan har amal itu nih kimikna, bila dia amal nih kahud, as Quran mutasil kita, mutasir shudu boshah, as Quran merjegah tetu boshah, as as Quran ba'ish shudu boshi ki amal anjambita. Agar kasi agamal anjambita, shudikali mikini, megida mashab mas, ni shud ni mikini megida mashab mas. Nee, insan هر عملك انجام میده باید متاثر از قران و حديث شده باشه اگر انسان متاثر از یه دال میشه یک انسان است که ده ده تنزیما و تنظیم یک عبادات بدن عادت فعلی خود چی میخوان لغو میکنن مویان لغوش میکنه در ایبادت خود مقصدش خدا نیست در ایبادت مردم را مردم را خوشیش میکند. اگر تنظیمش کوپ بکو میکنه اگر تنظیمش کوپ نکنه میکنه. اگر تنظیمش کوپ کت مسلمان جاهات برد از جاهات میکنه. اگر تنظیمش کوپ کت آمریکایی هم تن جاهات برد نمیگن نیست. انسان دیگه بندی خدا نه بندی تنظیمش. پس به این خاطر انسان به خیلی کوشش بکرده که در عمل خود مستعثر از الله شده باشه از کتاب الله شده باشه. و از یازدهم شد در قبولیت اعمال برادران ما است که انسان کسی که شرط مهم است که کسی که که عملش در رضود خدا قبول شوه از حرامش جناب بکنه خوراکش پوشاکش نوشابیش همه ازنی باید حرام نباشه کسی که عمل صالحش می‌خاید در بار خدا قبول شوه وقت اون انسان چی بکنه لباسو خدا خوراکو خدا نوشابو خدا همه اینو خدا از چی بکنه عز عرام نجد بتتعلّم أملات القبول بكم الله بكم يا أيها الرسل كلوا من طيبات وأعمال صالحة أيق عبادنا شو ما بق بخلي بزعمان صالح بكمي بق بخلي بزعمان صالح بكمي والله بكم ما قسمي جوا بدل شان منان حمي جوا كي كلوا من طيبات ما كسبتم مشكوروا لله إن كنتم إياه تعبدون عايش شما ما بق بخري حلال بخرين حرام نخرين بس خدا خدارة بكمي حمد سنه و عبادته و عمله صالح انجام بدهید اگر شما واقعا الله را پرستش میکنید اگر واقعا تو الله را پرستش میکنید بندگی الله میکنید آرون نخور آرون نوش آرون ننوش باز الله جل جلاله عبادتتون قبول میکنه در حقیقت می می که رسول الله ص میگه لما ذكر الرجل يطيل السفر عسى واخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وما تعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فان يستجاب لذلك رواه مسلم ان كازي كي در سفر ميباش برادران آلات سفر ترشطصيل ميکده باش و برادرود ميباشم ميایش از اثر سفر قباد پیچيده ميباش کالاش چيز ميشه ده باش با دي سفر روان ميباش اگر دست خود گانا بخانم الله دعايش قبول ميکنه دعاي مسافر اما اين ديني ميارته كه خوب بر قبوليت نزديك است بر قبوليت خوب نزیک است که الله عملت را قبول کنه، اما لباسی که در بدن شست که با خواب استفاده شده دارم است. نانی که در شکم من لحظه‌ای روان است، انرژی از آزمیگری آرام است. یا آبی که در پتک من دختر و دمینش آبی که از غاز در دارم است، با پیسی آرام خریده و آبنا. آنها میگن آنچه چی خواهد دوست را قبول کنم شما کالای شراب، نان شراب، آب شراب، حتی گوشت استخداگی در بدن شده یارم. نگم میخوای چی؟ خود دوست قبول أني شددت كي كثي كي مي خايكو الله عبادة هذه القبول بكونها عمل صالح هذه القبول بكونها أرامنا خلاك. دل دميجي مع عمومها لا تقبل ممن يأكل الحرام والأحاديث في هذا المعنى كثيراً. والله جل جزه الاحاديث نبيه سلمت الاحاديث الحديث خايكو ولا يقبل الله إلا الطيب رواه البخاري. الله قبول لمي كنا معتبر عمل القبول مي كي Balibasa tak, balibasa, ba, bahasa itu, bal, nushabi tak ada jambloresnya. Allah dalam Al Quran kerana beliau memerlukan mengatakan bahawa Tiada kafat harun rujuk pada itu. Balibasa, ulama mengatakan, ia tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa balibasa jelas tidak boleh masuk dari masjid, tetapi boleh masuk dari masjid. Tetapi tidak boleh masuk dari masjid. Tetapi tidak boleh این شرط قبولیت عمل صالح ایمی است که انسان باید در عمل صالح خود چی بکنه؟ از حرام باید خود را نجات بده و دیگه از شروط که سیزدهم شرط قبولیت عمل صالح ایمی است که گناه را انسان ادا بدن خیلی وقت هست که انسان یک عمل انجام بده نیک بس دفعه اش گناه میکنه که گناه خطرناک عمل صالح عزیز از بین بره عمل خود نماز خون خوب روزه کرده خوب عاش که خوب جهاد کرده در پلیش ریا کرد گنازن قرش تا خراب أربعةين نبيين. كأن إجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العالم، كتاب دريمي كعالم أنه لا يشترط عند أهل السنة والحق من قبول العمل في قبول العمل ترك جميع الذنوب ولكن بعض الذنوب يمنع قبول العمل. كمن ش كمن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعةين يوما أربعةين صباحا إن إجى أهل السنة والجماعة قبول ای بی اعتقاد هستند که تمام علاقتن تمام گناه ها در قبولیت عمل صالح شب این یعنی اینکه ادریس هر عرض گناه عمل صالح انسان از بین ببر اما بعضی گناه ها قدر خطرناک گناه است که عمل صالح انسان از بین میره مثلا شراب خور رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که شراب خور که است او لم تقبل له صلات 40 صباحا لواه ونسائي وأحنا. كل روز كاسك شراب منه وش كل روز الله عمل نماذج روزيزل كبر. هذا ببين الجناة باعسي. أز بين بردان عمل صالح إنسان مجددا. إن كاسك مي خايك عمل صالح أز يقبل شادة القبول يتميز كإنسان حز جناهش نبوهنا. وقد وكقطع الرحم ففي الحديث لا يقبل عمل قاطع الرحم. كاسك دار بين دوستاو أقربال خدام راي كوكام وما خلا عاما. با خاطر دنیا، با خاطر دینه. آگه کاکائی یا مامای یا بچه آمید یا بچه خودت آمریکایی شده که تا آمریکا کار میکند. تو به اینیه که شکار رابطه میکنی. یه بعدت است. اما با خاطر زمین، با خاطر جای، با خاطر پول، با خاطر پیس، با خاطر روابط زنانه ای. امرای از نه شکار رابطه میکنی. اندیمی شکار رابطه تو با امرای اقربای و کسایی که سلیح می با امرش کسی که با امرای خاله، املا، کاکائی، biada biradarzola qaharzola qahat qat robitimikun ana namaz mi khod namaz sh qabul nis agroze mi rodesh qabul nis agash mi donash qabul be min khatar ulama me kas haj bit va aw qat qaz haj dartan dostay khod ro chi kun bo bozun hajba shor qaz ki qat asale rahim mikun amale taba khod qabul nemishe ani kas ki mi ro amanesh be khodah qabul shava va allah be rodesh mashal anjam amale dik shode jav beta da dunya kush kon ki qat asale rahim mikun کسی که قطع سر رحمه می کنه، اللهم جل لجه اعمال از قبول میکنه. و همچنان کسی که در نماز استاد میشه شه، پاچیش از بجلک پاش پایش پایین می این نمازش فاسد میگه. کنه، از بین می چرا؟ ای اگر انسان تخیلن و تکبرن اعمال انجام میده دهد، باتفاق نماز از این فاسد از اعمال نمازشو قبول میشه. چرا؟ انسان عبادت و عجزی نمی بره، تزلزل وقتی کی ہم تدنا ان من متکبرن استدج ان شاء الله نموز متکبر قبل انا من صبح کل مدت بخاطر تکبر پوجازا ده ده پشت پای میندازن وقت کی بمینی عادت پیش خدا بم تکبر و غرور عبادت مانج میگن ان عبادت چی میگن نهایت عاجزی نهایت تاک و نهایت محبت میگن عاجزی است که پاشه ده دا پشت پای تخت بده دا بش به با همین خاطر کسی که پاشش از برجنده پاش پایین شده باشن تا آوا محدثاً لا يقبل منه صرف ولا عدن كما رواه بخاري و كما اما قوماً وهم له كارهون و امچنان کسی که یا قوم را امامتش را میکنه كلاهن کاریش میکنه امامتش میکنه اما قوم ازو بخاطر الدين بزار میباشه الله عبادت ازیل قبول مشلی یا قوم میکنه قوم ازو به این خاطر نراض که بناماز است از خاطر نراد است که ای اربکی شده که تمریکای یک شده و بازم بزور این با شایی در بزگرفته نماز رو زیدی خدا قبول نمیکنه نعود و بالله من داره و دکه امچنان و امرعتن باتت و زوجها علیها ساختون دکه کسی زنی که شب را در یک جا تیر میکنه و شوحرش از اون راز میکنه این شب به در عبادت میکنه تا شوحر راضی رازی نکنه نمازش الله عبادتش قب وهمچنان والا و بران اما نماز و روزه او بنده را قبول نمیکنه تا به خاطر خدا دوستی و به خاطر خدا دشمنی نکنه دشمن برادر است که از یک مادر پدر پیدا شید با امریکای یک جاش ترجمان امریکای شد یا کار امریکای شد یا کته مرتدی یک جاش اگر تو به خاطر خدا که چون مخالف خدا و رسول شد علی با حزب شیطان یک جای شد با لشکر شیطان یک جای شد اگر تو کده دید دشمنی نکنی الله روزا و نمازت قبول نمیکنه الله روزا و نمازت قبول نمیکنه چون مسئله و برای خیلی مهم است که در حیجی میگه، صاحب کتاب که حتی یکون ولاؤه لله ولی رسوله ولی المؤمنین و یعاد ععداء عز وجل و یعنن بذالکا دوستی و دشمنیش به خاطر خدا و رسول به خاطر مؤمنین و دشمنیش به خاطر دشمنای الله شود که دشمنی به امر دشمنای الله بکنه و نکن آدم دشمنی اعلانم کن که مگه دشمنت است؟ گیر کردی نیستن من گیرن که دیدنی رو جانت. انسان با دشمنای خدا با علم قسم راویار داشته باشه که نیامرس قبول نمیشه. ابن عباس ساعدة هم میگه که من آحبه فی الله و آبغضه فی الله و واقلا فی الله و عادا فی الله ف فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد تعمل, عبد تعمل إيمان وإن كثرت صلاته وسيامه حتى يكون كذلك وقد صار مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجد على أهله شيئا ابن أبو سميقيا كي كسيك بخاطر الخضاء دستي كسيك بخاطر الخضاء دشمني كسيك بخاطر الخضاء دشمنی و دوستی را انجام داد. یقیناً که انسان در دوستی و در ولایت خود فیض خدا تا کمال درجه رسیده. کسی که با خاطر خدا دشمنی کرد، کسی که با خاطر خدا دوستی کرد، و با ببخ... دوستی و دشمنی که با خاطر خدا پیش بود، این فیض خداوند تا کمال درجه محبت رسیده. وقتی که در کمال درجه محبت رسید و الله این را جمله اولیه می می‌کنم و کسی که دشمنی و دوستی با خاطر خدا نمی‌باشد، وقی این انسان مزیب ما آن امر دامی که ایشی سلامتی بدبخت وقت به مزی ایمان نفهمید. یک کسی که با امرای مرتدين و منافقین شانه می‌ده و مسلمان از خانش میکشه و بر سوق بندی خانه میگن وزیر تعذیب و شکنجه بنده. این به تعریب و مزی ایمان نفهمید. و ناو خیر نماز بخوانه و ناو خیر روز بگیده. الله روزا و نماز دزیر قبول نمیگن. کسی که با امرای کفار بوده دل، بدوی کفار نشده. این مسعود رضی الله عنه میگه تقربو إلى الله ببغض أهل المعاصي وألقوهم بوجوه مكره والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالبعد منهم ببنين ابن مسلسا ميج شما دوستي بخدارة در جفعي لا بكرين با دشمن كردن بامراي كذيكي گناه غارستن وبواجه حبثار زش روبروش بامراي گناه غارا هر کسی که با امروی گناگار و امروی فاسق و فاجر و امروی مرتد و منافق اتبا خاطر خدا بد بد سعی میکنی با خدا نزدیک میشه چون ازد ابن مسود میگویم که شما بر خدا نزدیکی پیدا بکنید، با دشمنی کردن اهل معاصی، و دشمنی کردن مرتدین و منافقین و با خدا دوستی وقت دوست میشین که شما گناگار و مرتد و منافق را به چهره کریم و زشت ببینید. چشمشانی تا باش ترش بکنی اتا که انسان با گناهگار و با فاسق و فاجر میخنده و دست در سینه میگیده خود برش چم خم میکنه الله عزق قسم انسان دوستی قبول نمیکنه با این خاطر قرن مسود سمیل شما دوستی دانه با دشمنی کردن با امرای اهل معاصی و بعد دیدن به طرف از آنها والتمی سورد الله بسختهم و تقرب الى الله بالبعد منهم شما رضامندی خدامند را در دشمنی کردن با امرای مرتدی ارگوا در دین منافقین امرای دشمن شد الله مرا دوست می بیند ارگوا گناه برات رو زدید بعد دید الله تو رو دوست می و الله جل و نبی حضرت عبدالله نمسوت که در اجعه وتقربوا الى الله بالبعد منهم ازقدر از مرتد منافق مشرك و از گناغا دوری كنید ماقدر به الله نزدیک بشید شرط قبولیت عمل صالح امین است که انسان از گناگارا و از مرتدین منافقین دور بگرده تا الله پاک عمل اون رو قبول بکنه و این کلام گناغا است و این آخرین شاء الله می شرط میگیم و دعا میکنیم شرط العمل اداء حقوق العباد أو خلق الحسن وعدم إذا أحد من المسلمين وإلا فيديه عمله كما في الحديث خم يكي أس قبليات عمل صالح أميس ونقوم كذلك عمل صالح أميس إنسان حقوق بند آرد الاجتماع مراعاة لكنا كذلك دنيا نظن حقوق عباد مراعات لكنا مثلا مسلمان أمسائر عقش ميخرا برادر عقش ميخرا در اجتماع کس سلام نمیداد در اجتماع مسلمان از بیش از اذیت ضرر می‌بینه انسان روز مشعر عمل جای است در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه هر شما میدونید مفلس رسول گفت صحابه‌ها گفت الله و رسول شما مفلس کی گفت مفلس نبی اعظم میگه کف از روز مشعر روزه ما گفت حاج عبادت اعمال نیک عورت باشه اما در اجتماع یک مسلمان دست اند فرق زده یک مسلمان غیبت کرد یک مسلمان دروغ گفت یک مسلمان توهین کرد یک مسلمان عزتش به عزتش کرد اینا پلیش مدیتن روز محشر پیش خدا حساب میشه یکی میگه خدایی سر من تقرار داد یکی میگه خدای توهین کرد یکی میگه خدای به من غیبت کرد یکی خدا میگه بهتان کردم یکی میگه خدای ما رو بدوزی کرد میگه خدای عزت ما به عزتی به ما کرد كل دی بیج خدا حساب میشه میگه انتقام میگیره من از این روز Orang kau ni mungkin bersandar fakad atau bersandar fakad ni. Orang fakad fakad tak kau dah? Mereka dunia tu bising berkhidmat, tak khusus. Azad tu je biza tu je kau dah. Mereka bising. Namaz aku berazumita, orang ni mengubah. Dikau melayu gai bahasa mereka. Ruzi tu berazumita. Dikau melayu bakti berazumita. Zakat tu berazumita. Dikau melayu yang mana mereka berada. Dikau aman juga. Beliau kata dalam hadis melayu yang semua amalan yang insan lakukan itu menjadi dari insan, rakyat guna dari jawapan nazar. Modalnya dari kotoran dah. Modalnya cuma cuba. Anu anu orang, kita mesti memperbaiki kesekatan, buat orang kesekatan. Mungkin. Ia mesti memang estat muka. Allah mungkin mana guna itu? Dapat kasih minat minit buruk. Dengan nafar mungkin buat orang bermuka dah. Mungkin mana guna itu? Dapat kasih minat minit buruk. Dengan nafar mungkin beza tiada orang به آخر اون مردم ها میره این مردم نمازاش، روزی، زکاتش، تحجدش، تلاوتش، عبادتش، اعمرش هم رفت سرکب و گناه های تگه مردم های دفت قضیه افتاد، گناه خودش و گناه مردم دفع کرده کده دو زخمه مزیش خدا هست پس به این خاطر برای انسان لازم است که به خاطر حفظ عمل ساله خود غالبته مرد منه کنه دختان آمد منه کنه دروغ و احمد منه گوی ما منه خورا عزت منه به عزتش نکنه به این خاطر کسی که میخواد که الله پاک اعمال عزیز قبول بکنه و شد عمل صالح امیز که انسان در اعمال خود متوجه باشه که حقوق عباد متوجه باشه از ده بخاری رو میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان له مظلمه هو منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخذ من السيئات صاحبه فحمله عليه اتى ابو هريره مييكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كسي كده كده كده كده الدنيا صديق برادر مسلمان خد ظلم كدا دروغ به عقلش گفته غیبتش کرده بهتان کرده مالش گرفته ابه عزتش کرده در این دنیا خودش پیش انا بتقول ما انا فاكر بيجي عسكر و بتقي و المسؤوليه بتبدل ده وجه رشوه ما تاخدها خلاص مكن مالك ما نمدها رشوه ما تاخدها خلاص بدمالك ما حق حقا ما نبی ازمیگه کسی که در دنیا حق کس ترشت در دنیا خود خلاص بکنه. اگر کسی به ازاد که در کسی داور که در کسی قیباد که در کسی بطور دن در دنیا پیشش مافی بخوای و اونا از پیش مافی بخوای و خود خلاص کنند پیش دو در دنیا. پیش دیگه در دنیا در آخرت از پیش دیگه نداشته باشند انتقامی که دوچند نه در همه نه دینار و نه در همه دینار بکار می‌کنند. بسیم می‌کنند عرق کسی که زور کنی بقادر اما زور می‌کند که دیگر نیکیت گرفته می‌شود ا Baz gunahai yang mudah mudah mungkin, dapat kutubar mungkin. Tuk nikah kita mudah mudah mungkin. Gunahai mudah mudah dapat kita hendak tu, tidak dapat. Mesti tukar begini, barat rabi. Begini. Amalan soleh pada mungkin. Ini syarat keabuliat amalan soleh ialah, si insan wukuh memerlukan masa untuk paskan. Dunia mudah mudah, dari mudah mudah mesti kuat prosesi berkah. Berkata jika zulma dah kacik ada, kacik ada, kotor kacik ada. Dunia aspish dunia manfi bukanya. Tu Allah jelal jelal. Ucik bukannya. Amalan zidid datang barat,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 حاشا فليس الأكفية